بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله محمد و آله الطیبین الطاهرین اللهم لا تزغ قلوبنا بعد بود ارسل خدمت آریان که غیر از خود اقسام میته که میکه حیوان خوندار یا بیخونه یا نفس سائله یا تعبیر دیگر غیر از این جهت یه بحثی هم به اجزاء خود میکه میشه و باز هم عرض کردیم که آثاری و احکام رو که الان بحث میکنیم ای که راجع به حرمت استفاده است، یکی یعنی انتفاع بشه حالا انتفاع معهود مثل میته به خوردن یا غیر معهود که میته رو داریم با اولمان روی شیخ فیلون تو مقاس سد ساقیه جلو نهر آب تابیو با آب ما میته بگیزاره که آب ها جدیه به هر حال انتفاع معهود یا غیر معهود یه بحثا واجب نجاسته یه بحثا واجب مانیه در نمازه اون بحثی که ما الان داریم بحث بیعه بحث خیض و خروش میته هست و اجمالا غیر از خدا آیه مبارکه هر رمل میته خرمات علیکم میته باز غیر از آیه مبارکه که اجمالا داره فعی نهو رتسون حدیده بنابراین که زمیر به همه برگرده غیر از این ما در خود نصوص صحیحه هم داریم نصوص صحیحه این اهل سنت در خود صحیح بخاری داریم و این دیگه تقریبا آدم میشونیم دیگه تب در روایات اهل سنت انسان و <تصفيق> که بسته شده اون که پیغمبر اکرم در سالی که فتح مکه فرمودن در دیوار کعبه گته که داده بودن یا در, زیر در مسئول حرام خنده گرفت مردم گفتیم رسول الله چرا خندیم فرمودن بگید که این یهود یعنی معلوم ما کلا شرعی روز کردن هیلوازی کردن یهود خداوند چربی ها و دنبه رو برشون حرام کرد او رو فروخت او رو آب کردن تبدیل به روغنش کردن روغنش فروخت بعد طریقه من که این نیست اگر خدا چیزی رو حرام کرد بیش هم حرام ولی زا فرمون الله و رسوله حرمه یا حرما بی به حرمت بی, بی المیته متفقن علیه بین احسان در اقوال اشتباه نشد چون این روایت به نحوه صحیح از جابر ابن عبدالله انصاری و حتی به نحوه صحیح اندبع ذهن از عبدالله نعباس عباس آمده اول تا عبدالله نعباس یه متنی رو اضافه کرده که جابر نقل کرده. لذا اون متن عبدالله ابن عباس پیش بخاری نیامده اینه که من تأکید میکنم در روایات اضافه بر سند و بر مضمون به متن هم کار بکنیم. بعد باید کار اساسی بشه. همین حادثه واقیحاً حادثه واحده است. پیغمبر نشسته بودن در قصه یهود، هم, هم عبدالله بن عباس قصه یهود رو نقل می‌کنه، هم جابر. این به یهود و کاری که کلا شرعی که هنوز کرده بودن ابن عباس هم نقل میکنه جابر هم نقل می‌کنه که اون ذیل رو جابر نقل نمیکنه ابن عباس نقل می‌کنه ان الله با حرم شیء این رو ابن عباس نقل میکنه و بخاری هم نقل نمیکنه. توضیحاتش دیگه گذاشت. پس اون که مربوط به میته میشه اجمالاً این ثابته این توش بحث نداره. اونی که مربوط به بحث ما الان که بیه باشه. نجاست اینها تو کتاب طهارت لازم کاربردش این اجمالاً. پس الان بحث ما در سر چه قسمته؟ بعضی از اولا این بحث تا انجام بدیم پایه مطلق میته یا خصوص میته ما لحو نفس سائله مثلا و هاک از الکلام در حیواناتی که میتهشون اصلا تأثیر نداره چون تسکیه بر نمیدارن مثل حیواناتی که لحو نفس و سائله که مثل سرکور مثلا یا سباق مثلا فهمم این لاجبه این رسمه بست یه بحث دیگر که باز بین اهل سنت به شدت جریان پیدا کرده اجزاء میته از کردیم ما در اجزای میته اول رو به پوستش جلدش چون سر اجزا دعوا خیلی شدیده اقوال خیلی زیاده از ادهیشون زیاد از زیاد بیسته. حتی از اصطلاح صحابه مثل عمر و بعد از فوقه نقل شده که فرقی بین جلد با غیر جلد نیست جلد هم به خاطر اینکه که اجزای از بدن حیوان از اون چربی ها توی پوست میمونه اگر اون پوست نجس نجسه حرام هم هست، عکلش هم حرام، انتفاعش هم حرام و قید و هم باطل است. این یک رأی در مقابل آراء دیگری هست که استثناء پوست کرده. تو ما الان فعلا تو این بحث هستیم. از که معروف و مشهور بین اهل سنت استثناء پوست دباغی شده. خصوص پوست دباغی رو میشه پاکست و مانعیت ندارد و میشه خیلی فروش کرد یک نادری از اهل سنت هم مطلق پوست رو استثنان کردن چه دباقی شده باشه چه نشده باشه این تا اینجا سه قول چهار قول دیگه هم هست که گذشتی که نیم تکرار بکنه اما در علمای ما چیزی که در الان در علمای ما هست این سه قول هست مشهور علمای ما با شاد و علمای اهل سنت یکیه این که اصلا انتفاع از پوست نمیشه کرد و هیچ فرقی بین پوست و غیر پوست نیست که دباقی بشه چه نشه از کردیم در کتب اهل سنت حتی از عمر هم نقل شده همین رعی که از عمر نقل شده این مشکل فقای ما هست مشهور علمای ما که پوست حیوان به خاطر دباقی پاک نمیشه البته در بیش و انتفاعش اختلاف داریم اما در این که تاثیر تأثیر نداره و نجاستش باقی میمونه در این جهت ما بحثی نداریم این راجع به این قسمه به ایش هم اینشالا از اون دخول دیگر که پوست مطلقا قابل انتفاعه ولو دباقی نشده باشه از کنیم شازی از اهل سنت قائل هستن توی ما هم شازی از علمای ما قائل مرحوم صدوق ظاهر صدوق همینه اما رأی بسیار مشهور اهل سنت که با باقی پاک میشه بعدی خایدونش هیچ اشکال نداره به انتف این رأی مشهور رأی تقریبا 90 درصد اهل سنت این رای ما داریم اما شاذه ماست ابن جنی رحم الله لوشانش و ما به لحاظ روایت در روایات ما تاکید شده که در واقع تاثیر نداره بلهذا مشهور فقای ما همین است که در واقع اما روایت داریم دیروز خوندیم مفصلن رواید حسین زراره با مصادرش با خصوصیاتش در اونجا داره اداد دوبق البته در اون روایت انتفاع توش هست با دباقی دو نجاست نداره پاک میشه چون ناشه دوش آب میبیزی یه آب یه از امور پاک باشه سه مانعیت نماز همون زحوزه این سه تا حکم رواید آمازه مانعیت و طهارت و جواز انتفاع طبعا اگه جواز انتفاع باشه و تهارت باشه خود به خود جواز بدی هم در میاد اما تو روایت بحث بی نیست اون روایت سه تا نقطه تو اون روایت آمده طهارت انتفاع مانعیت نماز این تا اینجایی که ما بحث رسیدیم البته الان بحث در پشت یه روایت مرسل هم مرحوم صدوق نرد کرده که ظاهرش انتفاع به پوست مطلقه حتی طهارتش مطلقه موقع دباقی هم نشده باشید این روایت رو ما الان هیچ جا ندیدیم غیرت صدوق هیچ مستری برش ندیدیم و که من خود من عرض کردم احتمال بسیار قوی داره کلمه بعد ان یدبغ الى دوبغ یدبغ که در متن روایت آمده احتمالا در نسخه صدوق نبوده خیلی متن روایت مرسدوی که صدوق نهار میکنه با روایت ها سنزراره تشابه داره خیلی تشابه داره خب حالا یا حدث ما درست است, درست است، یا درستیسی خودون مسئولیم من حدثم اینه که اون روایت دو دودایی یدبغ داره یا دوبغ داره توی نسخه صدوق به نظر من این کلمه نبود از اما این هم نمیشه این کار کرد که مشهور بین اصحاب ما از این روایت اعراض کردن از اون روایتی که مرحوم صدوق ارده اعراض کلی کرده، اینه حتی نقلم نکردن اما از روایت حسین زراره اعراض کلی نشده به نقلش به فتاوا چرا؟ جز ابن جونه و قایتان هم صدوخ کسی دیگه فتاوا نداده اما بالاخره در کتاب تحذیر هست سندم داره مثل صفوانم هم راویه خیلی عجیبه مثل صفوان از حسین زراره نقل میکنه و باز ناغله از صفوانم هم حسین سعیده خیلی یعنی خیلی صحیح علای. خود حسین زراره توصیق نداره سندش صحیح علایی از باقه نظر حسین زراره خب این راج تا اینجا من خود من این نکته را عرض بکنم و خوب خواهش مهان دقت بکنم این نکته رو که عرض میکنم نه جایی دیدم نه از مشایخ شنیدیم مثلا فلسون بی که در کتابی چونم چاپ شده باشه کتابی نوشته شده باشه یا چاب نشده یا چاپ شده من نهیدن و اون این که من خیال میکنم مرحوم صدق جایی که به تعبیر رویه میکنه مثلا روی انزراره یا میگه سو سادق و علیه حسن این که بگیم تفنن در عبارت خیلی بعیده که ک و از عجایبه اینه که من در جاهایی من جمله همین در باب اصطلاح سید بن الوسی زباه هست آی میخواد نشون میدم چشه یه روایت داره مثلا این توری داره عبارات خود سله یه روایت نقل میکنه جین دس اسم نظرن روا محمد بن قیس این محمد ابن قیس سره ابی جعفر معروفه لالا فاصله برداشت داره و ربیان محمد ابن قیس یه عجیبه یعنی پشت سر هم هر در رو روا محمد ابن نقیس حدیث بعدی چسبیده همون و رویه محمد ابن نقیس خب این به نظر من شون که گیری داشته تصادفه این به که ایشان بانان رویه اوورده مرحوم شیخ کلینی و مرحوم شیخ صد توسی اوورده از کتاب ابن عبی آمر هم هست. ابن عبی آمر محمد ابن نقیس و همون کنم احتمال از همون جویی لیکن معظالب تعبیر که از محمد بقیست به کسبیده بود اون چیه که خود من آلا انشاءالله تعالی اون بحث رویه از روات شد چون نکات مختلف داره یه وقتی که ارز میکنم ارز کردم سابقه هم توضیحشو ارز کردیم ما تقییم و ارزیابی روایات صدوق بوده قضا فرمه چون به اسم میکنه بعد حواله میده به مشیخه با این اصطلاح جدید ما که خبر یا صحیح است یا موثق است یا حسن است یا ضعیف است اولین کسی که ما خبر داریم این ارزیابی توسط علامه انجام می‌ده. علامه حلی هم در خلاصش طرق صدوق رو تنقید کرده. طریق و لا فلان لا فلان گفته صحیح یا نه هم در مختلف در مختلف در منتهی ایده از کتبش مثلا میگه مثلا این روایت رو میگه مثلا این مثال روا حسین ابن زراره ف صحیح روا فلان ف صحیح ایشان میگه فل حسن فل موثر این اولین کسی که این کارو کرده مرحوم علامه است از این آقا بگیرید تا زمانی که بنده خدمت کردم معظم بالای شاید 99 درصد از آقایونی که با فقیر کار کردن معتبرا فرقی بین روا و رویه نیست خود علامه ور نوشته و در ادعی از موارد ضروری هست علامه نشا رواف صحیح هیچ فرق نداره این علامه رو بگیریم, صاحبه صاحبه رو بگیریم، مرحومه، مرحوم مجلسی، مجلسی صاحب و سایه بگیرین مرحوم مرحوم آشانتری مجلسی پدر مجلسی معروف پدر صاحبوا مجدسی ها در روزه متقین بگیریم یکی میخوام بگم راست طول میکشه تا مشایخ معاصر ما مرهماهر خویی که در درس ازشان ایشون می نشستیم ایشون فعلا بین روا و رویه و هم می‌فرمایند چون در خود مشیخه داره ماکان پیهند مثلا محمد ابن قیس ماکان شامل میشه به صدد روامش یا روئین چون ایش اشاره می‌کنه که فاقد نبوده چرا اگه ان اضافه میشه شد و قد فرمودید ایشان می‌فرمایند تغییری نمی‌کنه از مشایخ معاصر ما همینطور من نشیده بوده اما یعنی تو ذهنم عکسش بود اما این رساله لازر استادهای سیستایدن که چاپ شده ایشان رو هم تصریح که تفنن به عبارت داره یه دقیق تفنیان میکنن خب حالا فرقی نمیکنه یک مطلب تفنن، تفنن در عبارت تیگیدن چیز عبارت سبق و فیسیست پیدن مگر بگی مرموستتون از اصطلاح علمی خارج روی خب بدایش که روا رو رو زراره گرز روی انزراره از خب دو ظاهرش که د حالا من وارد اون بحث میشه یک جدیگه که سمره داره یک کلیدی باشه به قول موزی جیب باشه اونجا عرض میکنم فعلا اینجا وارد این بحث میشه یه جاهای ایشان قیل از هم مثل همین آل از صادق علیه السلام داره برد داره بقید سوئل از صادق علیه السلام بقید روگ یعنی صادق علیه السلام که این توضیحش هم اخیران عرض کردم به ذه ما فوارق بین روا و رویه پیدا کردیم تمام اینها با حدثه یعنی آمدیم یک پیشفرزهای رو حدثم به ذهن خودمون جمع جور کردیم دستبندی کردیم حدود چهار تا پیشفرض. آمدیم تطبیق کردیم بیدیم غالبا جواب دادیم هر از خوب دقیقه نه در کتاب که سیناس حالا دیدیم نه از مشایخی شنیدیم همش حدث شخصی خود منه حالا یک چه الزم اشاره عربی توالن توالن ولالبی حالا این ذن یا عین الیقین اون مطلب دیگه ما یک وضوحی رو برای این مطلب کردیم در محل خودش که این شاء الله ارشد حالا اینجا این مطلب رو میخوام ارشد بگم به ذهن ما رسیده اگر صد میگه قال صادق یا رو یعنی صادق بحثی که هست در مرحوم آشاد و کریم داره قدس الله نفسه مرحوم و استاد رساله لازرم داره در مستقل لازرر به استصحاب اخیرا مؤسسه تنظیرنش و نشر آثار چاپ کرده لازرر سابقا چاپ شده ایشون هم اونجا دارن برس لازرر اگه آن خواستن از اونایی که به قلم خود ایشون نه تقلید ایشون هم در لازرر که این سال لازرر اخیرا چاپ شده در مؤسسه تنظیم و نشر داره دلایوت داره داره و یه مقدارم خط خودشون رو در جوانی نمیشن چون یکسافت مرکب و چنین ازم بین سنی چرا 45 سالگی میشه علیه حال ایشون هم اگر خواستیم ببینین در اونجا به قلم خودشون دارن مرحوم ها شیخ هم من دیدم در کتاب سلافشون مرحوم هاشمکریم قدس الله واس اما کجاش الان تو ذهن نیست دیدم در کتاب سلاف سلاث قلم ایشون چون سلاث هاشم تقریر هم داره سجلد قطوض مرحوم آموزو محمودی بود آشتیانی که از علمای منزوی بود بسیار مرد فاضل و فقهی بود اینا بعد از انقلاب شده 13 سال پیش خود که. بود که خیلی گوشگیر بود زور روز نبود مرد با فضل و انصافا دو تا تغییرات حاشیه که دار یک ای نکاح ایشونه داره یکم ای صلات حاشیه نکاح شیخ مختصره اما سالات ایشان خیلی مفصله سه جلد قطور همه قرآن آموز محمود داشتند اما صلات حاشیه یک جلد خدا حاشیه به قلم خ یک جلد منظور کنم علایه‌حالم توی صلات حاشیه شیخ ایشان فرق بین قال از صادق و رویان صادق رو به همین نکته بودشن که این صحیح بوده بسه قال از صادق اون صحیح نبوده بسه رویان این نیست از کردم این تفکیک که بین عبارات به لحاظه ارزشی مطابق با مقدمه صدوق نیست دقت لقت این مثلا این روا محمد روا زراره یعنی سر درسته رویان زراره سر ضعیب این با مقدمه یک کتاب نمیخوره نه. اشتباه نشه. ظاهر عبارت مقدمه صدوق و دیواجه صدوق کل کتاب محل اعتمادیشانه اشتباه نشون چه رواب چه رویه هست اگر بخواییم رواب و رویه رو فرقشونه با این مسئله بگذاریم یا قال از صادق رویه یعنی صادقه این با دیواجه نمی سازن مرگومه آشق محتضای حالی یادی مدیشان به نقل ظاهره از بود، اما من این در نوشته پدر ندیدم در نوش از کسی دیگه هم از شاکی‌ها شیخ فارسی مثلا نشیلن در نوشته جو این رو سماعا من از آی عاشق مصطفی اشاینده که دار از نقل پدرشون خیلی با فرست بعد 20 سال بیشتر می‌فرمید از قول پدرشون ظاهرا از قول پدر این ظاهراش قول پدرش دوستا مرحوم شد بله تقریبا 64 و بله 64 نه 66 تا سال هم. من دو سال قبل از وقتیه نه حالا اون ظاهرش اینه که مال خود ایشان مال پدرش بوده پدرم گفته ظاهرم تو ذهن به نقل از امام هاشم عبدالكریم رحمه الله ایشان واقعا غیر از اینکه حالا بسیار مرده مصلیه و زاهد و عفیف و خیلی جهات اخلاقی و روحی بزرگی داشت خیلی منعله خوش فکریه خیلی انصافا پس کتاب هاش خیلی خوب میشه استفاده کنم خیلی خوشبخت به خاطر هاش خیلی هم زحمت کشیده انصافا چه ایام نجف و چه ایام کربلا ایشون یه مدت هم بعد از جنات دعوای مشروط و استبداد و دعوای سیاسی سر ایشان درمیاد که حالا قصای تاریخ چه رو بی گفتن ما امریم کربلا برای سرار است دعوای سیاسی که پیدا شد در مشروط و استبداد ایده بودمون کربلا سفارش شد بعدم چه ایام قوم بسیار واقعا نوشتاییشان قابل استفاده است با اختصارش بعدی جه ها مثل این کتاب نگار بسیار موفیده یعنی از یک جلد ایشون از 10 تا 40 که دیگران نوشته مفیدتر و نافعتر و نکات از زرایف علمی دام من این رو جای نیدم از رجالیون غیب رجالیون و فوقاها و اینا الا ظهارن مرموهای حایری قد از الله نفسه از پدر ایشان نعملی کن در این شبهه که صدوق گفته جمعی روایات حجت و صحیحه لیکن خب ما عملا میونیم توی کتاب صدوق و ضعیف وجود داره نمیخوره این, نمی این بیواجه با اون مقدمه نمیخوره با اون واقع من عاشق مرتضیه نه که قول پدرشون ظاهرا الله علیه که ایشان عرض می‌فرمینند مراد از صدوق روایاتی یک باب واحد صحیحه نه مرادش کل داره والله و ممکن است در یک باب واحد پنج تا روایته ضعیف باشن اما اون سه دیگه صحیح هستند یا لاقل یک صحیح داره پس مراد ایشان از صحت این نیست که کل واحده به احترام حاضرین چون فرمودن اگر واقعا نشون فرموده لازم بانده خیلی حرفا همه نه رو بکلا چون ولی چه نوشته نشده هم فواید سمایی دنده از یک استظهار مرحوم آشاد و این بود که به لحاظ مجموعه روایات بابه ولی زه اگر یک دونه ضعیف باشه خیلی مزرمیست مزر اگر مرحوم اگر من حافظا درست کار کرده باشه، آشاد و کریم مطلب باشید و آغازات ایشان می شده نباشتن این این جوابی ایشان هم درست نیست. اگر برمر هر یعنی که از مال ایشان یا غیر ایشان. ایشان در کتاب صدوق ابوابی داره که یک روایت داره تو سخونی که ضعیفه. یک روایت داره که ضعیفه. در اصولاً مرحوم صدوق در کتاب مندای احذر مثلا یک جا یک روایت از ابوالبخاری نه متونه راوی لا افتی. یعنی نا ضعیفته. پنج جا دیگه روایت ابوالبخاری دور بری. لذا این همون نقطه است که من ارز کردم این تحلیل ها که اینو گفت قالص هست صحیح گفت رویست هست اینو تحلیل ها به جایی نمی رسوند همونطور که ارز کردم یک کلمه صحت پیش مرحوم صدو مجموعه شواهد نه صحت سهت در این شواهد خود متن هم دخیل ده. اگر مرد سلیم باشه مطابقه با شواهد کتاب و سنت باشه البته مرمون صدیو خیلی دنبال تطابق کتاب و سنت نیست ها بیشتر انتابونی هست مشایخ نعب کرده باشن در کتاب مشهور باشه مشکل خاصی دیگه نداشته باشه این روایت روی ایشان قبول میکنه حالا میخواد سندش به اصطلاح ضعیف باشه از که این صحیح پیش صدیو او صدیو اوسع درجتن هست از صحیحی که به ادها گفته شده اوسامه اوسامه مطلق و اون خصوص بنوچ ممکن از کووالنسی وسط باشه به ایشان بهش عمل نمیکنه برای واسه باش ضعیف باشه به ایشان بهش عمل اون چیزی که من خودم بهش رسیدم حالا از کردم بعدم تأکید دارم میکنم نه از کسی شنیدیم نه در کتب دیدیم از مشایخ به نظر من اون جایی که مرحوم صلوق تعبیر به سؤل صادق یا بیان صادر میکنه این اشاره به ضعف نیست اشاره به این که مثلا مسترش هم کذاست نیست. اشاره به اینه به ذهن من. به ذهن من. این یعنی اون معنایی که مراده ایشانه میخواد بگه ولو این حدیث و مشایخ قبول نکردن. فتوا ندادن. لیکن من بهش قبولش دارم. اگر دقت بکنید در شعن صدوم وقتی در عبارات خود من لایه ازو یقول و شیخ و سقت الفقیه. اصلا ایشان برنامه فقیه نه به عنوان راوی صرف. همین شنش اینه که روایت رو که نقل میکنه اون مقدار فقیهی رو قبول ده. همین تازگی برای شما کن بین یک روایت درباره موی خنزیر که ازش دل هست وجود داره خیلی عجیبه اصلا تو روایت دارم سأل تو ان شعر شعر حبل اتخاب من شعر خنزیر که بعد ازشون آب میکشیم با چاهو اتوان و از اون آب و اشتار من اون آب فقال لابست این نه دق... صدوق دقیقه که آمده نه یه ولی بگیه که مثلا ویجوز همون مطقه ویجوز داره همون لابست را آورده خیلی عجیبه با عنوان فتوای خودش در نوشته نمیشته لابسته به انیوستقا به حبل اتخل من شعر خنزی خیلی عجیبه و میتونستون رویجوز د الکه بنازدن روایت نمیاره مضمون روایت بیاره ببینید مرحوم صلو اینقدر دقیق در از این روایت اون کلمه یوش را و منها و سازن و غن فتوا بده به کلمه رو. اگر روایت نقل میکرد باعث می آورد و باعث بگه لا افتی به این مقدار چون تغیره ایشون محاسبه بگه انقفا جایزه اما طاهر نیست نجسه مانع یادت نماز داره لذا ایشان آمد اون رو روایت نقل نکرد اما در دل از میته اون مال خنزیر بود در مال میته تو مال میته یا توزع نبود فقط انتفاق بود به اون رو متن روایت آورد یکی رو متن روایت آورد یکی رو تغییر داد اما ذرا دقت کنید چه ایشان ظریفه چون تو روایت هم فقال لا باس است ابوالسقوم هم میگه لا باس یعنی استقام همون لابتی که جواب بوده برداشت فقط دو تا کلمه که حضب بخواسته بکنه چون میخواسته حضب بکنه و تصرف در رواسته نشه فتوای خودش رو امرده فتواه چون مطابقه با روایت نیست این روایت نیست گانوان روایت نیمورده این زرافت های کار صدوقه خیلی دقیقی برخورد کرده انصافا لذا به ذهن این حقیق سرافه تخصیر میاد چیه؟ محلبی رو که صد بوده در باب جلد میته میته ایشون میدونسته مشایخ شیعه قبول نکرده بزرگان قبول نکرده اما ایشون عقید داشته روایت قابل قبول و مشکل نکنه حالا یا اون روایت جلد ای که از اصولان عقید شده مثل زهری یا مثلا گفته این رخصه چه اشکال داریم؟ ما عقض به رخص بکنیم چون انصافا دعید نیست این نکته ناآگاهانه، در تغییر تاثیر می‌گذاره که شرایط زمان در فتوای او همینش ناآگاهانه یک طرف دیگه بره فرض کنید مثلا 40 سال قبل که زنها و خانوم‌ها اجازه درس نمانده نبودن شاید مثلا در تمام حوزه‌هایی بود که زن حق نماز نداره اما حالا بعد از 27 سال این امر جا افتار. حالا مثلا ممکن است یک فقیه بگه نه حالا ما در می گفتیم اشکال داره اما حالا مثلا اشکال نداره نیست بعضی از شرایط زمان نمیخوام بگم تغییر به زمان دیدش عوض میشه نه یعنی فهم جدیدتری از روایات پیدا بکنه از ادله پیدا بکنه برخورد جدیدتری میشه من در بحث طلاق مکره امس کردم الان شما کلمات آمه رو نگاه هر همچی میدین به اهل صحابه و خود صحابه بیشترشون قائلا طلاق مکره باطلی یه این ست سال ساد سال بعد فوقاشون میگن نه طلاق مکره سریده من احتمال من از بس این خلفا به اسم خلفا یه اون حکامی که بودن چون ادهشون کارشون هنگی بود میشونم فلانی زن خوب داره مجبوری این زن به طلاقه حتی طلاقه مکره یه مقداری تو فقه آمد به خاطر اعمال سلاکی به تاغود بسته به عنوان اعمالی که تاغود ها انجام میدن از زور گفت از زور اون سلطه حاکم آمدن گفتن درستش خب بود یه به این بود که اگه بطرم باطل اصن خلیفه امیرالمؤمنین و المتوکل علی الله گفتن که داره خب این بزور از ایک آقای گفته طلاق بده دیگه خب این بود خانمشه میشه حرامه صحابه چون اطلاعشون به این قصه کم تر بود اونجیه که از صحابه نفس بده که طلاق مکره باطل اونجیه میگم بعدتر یواشاش اینکه بعد دو تا میگه یعنی معذب اینا که باریاد نه طلاق مکره توش اشتباه نزه دقت ما در این می‌دونیم که بعضی از مسائل حالا آگاهانه نا آگاهانه بر خود این فوقها تأثیر میذارن به این هم یکی از کارهای مشکل فقه هم. که فقیه در مقام استنباد و استظهار از عدله که هیچ نه این شرایط اوهامی و خیالی واقع نشه این رو خیلی دقیقه بکنیم که کار بسیار مهم نیه. مثلا راجع به جلده میته ببینید جلده میته اگر در حد این بود مثلا گوشت میته خب که رسول و داره اون روز واید که نلله از طریق هر راه میادی. چشاند گوش هر راه میادی. اون چیه که از اون مرد، اون مالک نه، آنها سودیاران نه، ازشون که جلد میاد، همونطوری هم میگه خوبی روکش نداره، عیارش گم نداره، نلله از طریق هر راه مال میادی. چی شد بعد عملا بیشترین کس. خب مثلا اونها برایشون ترک جلد میاد، پوست میاد، یک داره. بوشده حیوانه، مردان مشکل نبود، نخورن. خب کوچشده میگه مثلا وقتی یک مثلا از آیه مثلا چی میهن روزی ها؟ دیاری مثلا بخواهی اون رو پیمین بخواهی رو خالی بخواهی مشکلی که نداره اما پوست میته الان روایات پوست و با دباقی این در کتب اهل سنت الاماشالله از بخاری بگه پمادون احتمال داره خب بخاری از کلمشون بعد از اینکه خاص خواست هستی احدیث بخواهی اینا در قرن سوم بخاری وفاتش دیست و پنج در اون زمان 256 الا الله شمشیر دست مردم بود اغلب دسته های شمشیر و غلاب شمشیر از خوسته میده بود بحث یعنی پرز اولا خیک و مشک و اینها که بسیار مدارم بود صدوق هم اگر دقت بکنید مثالی که زده همین خیکه و از اجایب اینه که در کتاب موقعه هم که دیگه مطلبات نهازه فتوازازه نمیشه پیزق قل منجلدت میته یا منجلده هسته زق همه خیلی خب اینها یواش را راه افتاد ببینید میکنه قسم کنه یعنی توی جا مثلا الان این مقدمه را افتاده هم به این نواست سیغل الان یکی از مشکلاتی که در اون زمان برای میته آمد خلاف شمشیره حالا خلاف شمشیره هم دو جور بود یعنی طالب شالاتوش البته غیر از, از مزکر یا میتهایی بود که قابل تفکیه بودن مثل یک میتهای گوستند یا میتهای شطور یا مثلا هم گاگ مثلا از پوست گاو درست کرده بودن یا میتهایی بود که باز اونها خودشون قابل عکل نبودن مثلا از پوست شیر مثلا مخصول البته مثل پوست شیر خیلی منشه افسوا نبود اما انتشار جلود میتهای فرس کردن ممکن بود گوشت میتر نخورن مگر در حالات استراز خیلی براش مشکل درست نمی اما مشکل سر چی آمد درست کرد؟ پوست میتر پوست میتر این نبود که مثلا یه پوست رو روش پیل چیرن. این فرق نبود یواشواش تو زندگی آمد همه شبونه زندگی رو گرفت این بعید نیست یعنی وقتی که گیر کردن با واقع عملی در سادهن بعید نیست فقيه یک روایت هم پیدا بکنن و خیلی سندش معتبر نباشه بگی اخذ به رخس اوق بکنین بالاخره روایت همین مطلب قبولش میکنه همین روایتی که در جلد می که با دباغی داره سندش صحیح لولا حسین زراره اگر قائل بشین که سختوان اندر ی الا انسقه خب اون دیگه کاملا نظریه خود جناب حسین زراره در اون روضه امام علیه السلام برای خود از حسین و هر سر دو دعا گردن خب فقط به سر چیه ما میگیم با شواهدگیر محلش نفهیم یک فقید الان شما مثل صاحب دارین که ایشون قاید اگر واد متعارسون مخیرین غیر از موافقت کتاب و سند و غیر از مخالفت ها آمنه. اگر در این جر نبود شما مخیرین به این شما نگاه کنیم که حدیثی که رخصه رخص داره داشتیم. اگر صاحب نظر نظر ما احتمال بسیار قوی میدیم یک مقداری که مصریان ها آمده در روایات دباغ المیتر قبول از حداقل این نکته در ذهن وارتون باشه روایات در زمان رسولات تدوین نشد پیش اهل سنت از تدوینش حدود 100 سال گذشت و اونی که تدوین الان اولین نوشتار رسمی که الان ما داریم به عنوان سنن رسول الله هم این کتاب محتعماله که ما یه در دنیای اسلام خیلی از اهل نمید این کتاب سننه محتعماله که سال 150 نمید و بعد حدیجن بعد از او آمد مسئله حجیت و موجیتی شد سال 180 و 180 من احتمال بودم خود فقه اهل سنت با اینکه از عمر نبو کردن که اصلا قابل انتفاع نیست بسته میده من از آده که رفتم دنبال رواز دباقی و حتی بعضی دباقی هم نمیخوام که صدوق ما هم از چیه از صدوق آلوی نظارش این طور. من احتمال میدم واقعیت های خارجی تأثیر داشت در انتخاب رواز خود در قسم انتخاب خود اهل سلمن اون هم سنده معتبر لا تنتف اومن به احاب ولا اصب رواز عبدالله ابن علیم در اده از این کتب ما عبدالله این حکم چاپ شده غلط است حابش عبدالله این از این از صحابی است که از زبات اهل سنت در مقابل هم داشتن دباغ الجلده دباغ اعهابه ال اگه ما اعهابه فقط تهو عمل خارجیشون هم هنگ صدها هزار خلاف شمشیر بود که از جلده میتون بود ولی اگه دقت کنید ideia سوالشون جلد با دباغی پاک میشه حتی پوست سگ سگ نه. چرا چون این جلد شمشیر و قلاه شمشیر ادیشم از بود که حرام گوشت هستند. مثل شیر و گرگ و ببر و این جور چیزا. ادیشم مثلا های زیر رو ازنان میگفتن مثلا انسان اگه اذن پوستش شیر لباس بشه قوی میشه شجاع میشه درش مثلا جرأت میاد که چه در میشن؟ من دیگه این پس بحث خوب دقت بکنید دو تا جلد نیت پیدا کاش کرد میته متألف ما بود اون میته که قابل تکیه اندازه بود میشه اضافه شد اون دقت کردی ما الان ان اگر با این بیلگاه نگاه بکنید فرض کنیم روایت صحیحغن می و برخوردی که علمای ما با روایت صحیحغن کردن قرزم دقت بکنید از زمان رسول الله تا زمان بخاری تا حال فرض کنید دباغل جلد آورده. و تا اون زمان یا اون روایتش شاتی که محضوله بوده دیویست و سال چل سال گذشته در این دیویست خورده ای با عنوان یک واقعیت اجتماعی استفاده از جلد میته دباقی شده متعارف بود تو جامعه دیگه جا افتاده بود لذا اگر دوران اند میشه شود فوقش لا تن من المیته به و اصلا از اون برم ا یا ماحاب دو بر فقطسه خالی نخواهید برای بعض جامعه اصلا د بعض سرقیقت داره که ما غیر از این راهی نداریم خاب بعض ضا می کنیم یا بعض حی ل سط نام نه این شتون غیر ها ما گه ت دیگه دیگه غیر از این نداریم و اگر بناش مال جود متر استفاده داره داره در کلافش همید هیچ راهی نداریم چون مزدکاننا نداریم همش معتر ما راهی غیر نداریم این روایت رو قرینه بگیم این در زمان امام حادی است که معاصر با بحاری یا عرض رضا هم نرسوزه که باز اوائل امر بحاری است لقدر ترموندید شادم بحار رو هم بچه بود من دقیقاً دید. نده و خاطرش ذهنش و خاطرش تو ذهن من نیست اما عمرش در ذهن نیست الان که همکار خوب این مطلب رو در ذهن وارتون باشه که برای فهم روایات ان شاء <تصفيق> <تصفيق> پس اون تعبیر سؤله ای که مرحوم صدوق به کار من نزد کلم اخیر این به خاطر این است که بخواد بگه این روایت رو من قبول دارم ولو مشایخ قبول نکردن چون اگر میگم قال از صادق با عليه السلام اینو یعنی روایت متلقا قبول در قوم و راستم گفته مشایخ شیعه چه در قم و چه در بغداد و چه در خراسان مشایخ معروف اون زمان این حدیث رو قبول نکردن حق با ایشونه خودش میشه این داره ای من خود قبول داره یعنی من پیش من شواهد بر قبول هست ما به نظر ما مهمترین کار برای موسل و عرض بر مشایخ خصوصا استادش ابن چون مورد قبول من هم ابن ولید نبوده از اون طرف خودش به عنوان قبول کرده گفت روایت مرخصه است رخصت ان الله یحب وان این روایت در باب احرام هست در کتاب حج ان الله یحب ان یؤخذ یؤخذ ب... برخصه کما یحب و یؤخذ با عزايمه مثلا خدا دوست داره رخصت رو انسان انجام بده همچون که واجبات هست مبهاتم اجازه روابطم برخود سخت نگیر ان یوهب یحب با ان یؤخذ برخصه ایشون روایت مرخصه را قبول کرده لکن مشایخ قم اون روایت مانع را قبول کرد و حق همونه که از خواهم کرد ان شاء الله علیه و سلامه